بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج كتاب حج والحج فرض على كل حر بالغ عاقل من المسلمين إذا استطاع إليه سبيلا بماله وبدنه وإمكان مسيره وأن يؤديه بنفسه ما بين استطاعته وموته بالغ می فرماید حج فرض هست بر هر انسان آزاده بالغ آقل از مسلمانان منظور یکی از شرطاش اسلامه دیگه نه زمانی که توانایی رفتن به حج داشت با چه چی چیزی؟ مالی و بدنه با مال و بدنش یعنی توانایی مالی و بدنی و امکان مسیره و امکان مسیر امکان رفتن پول داشت مساله مسیرها ها مسئله هم مهمه خب و اینکه اداش بکند خودش ما بین استطاعت و ما بین موتش یعنی شوافع معتقدن که فوری واجب نیست برخلاف ایمه سلاسه که اونها میگن ان الحج واجب على الفور ماذا بمشافي رحم الله عليه تقول میگه تراخی هست فور نیست خب فین استطاع بماله دون بدنه اگر توانایی مالی داشت نبدنی بدنی لازمه هو ان يستنی به انه في الحج لازمه برش که نائب بگیره برای خودش کسی رو در حج چه کسی رو؟ یستنی به فعل من مفعولشه لازم این یستنی به انه فی الحج من قد حج ان نفسی لازم است برش که جانشین بگیره در حج کسی رو که برای خودش حج کرده است کسی رو که برای خودش حج کرده است این اگر توانای مالی داشت و بدنی نداشت جانشین میگره حالا بر و این استطاعت ببدنی دون ماله فلا حج علیه میگه اگر توانای بدنی داشت نمالی بر اکس قبل فلا حج علیه حجی برش نیست مگر الا ان یکونه من اهل الحرم مگر اینکه از اهل حرم باشه چون دیگه اهل حرم دیگه نیازی به استطاعت مالی او من یا از حاضری یا از حاضری حاضری در پاورقی لباب آورده بود اون افرادی رو میگویند که به اندازه از مکه از حرم دورن که در اون فاصل نماز قصر نمیشه یعنی اطرافش یعنی چی؟ و من حج مرتا واحده فلیس علیه غیرها الا من نظر او قضائم و هر که یک مرتب حج کرد پس نیست بر او غیرها حجی دیگر مگر اینکه نظر بکند یا قضا یا قضای حج قبلی شخص گفته اگر فرزندم قبول شد حج میکنم نظر کردنا نه این صورت دیگه باید بره ولی وگرنه حج یک مرتبه فرزن و ایذا حج السبي قبل بلوغه و قبل اتقی لم يجزه ما ذلك ان حجة ل اسلام و يحجان بعد البلوغ والاتق می فرماید زمانی ک حج کرد بچه قبل از بالغ شدن و برده قبل از آزاد شدنش اون حج لم يجزه ما کفايت شن نمیکنه بجای حج اسلام اون حجی که مرتبه فرض رو باید انجام بدن چون اون حجی که کردن دوره بوده که برشون فرض نبوده نظری احناف اتفاقا هم بینه و یه بعد البلوغ و الاطق و حج میکنن بعد از بلوغ و بعد از آزادی یعنی بچه بعد از این که بالغ شد حج میکنه و برده بعد از این که آزاد شد دوباره حج میکنن ولو حج قبل الاستطاعت او أما أجار كسي ومات قبل إستطاعة حج كارد أجزاءه أول حجش أنجام شدهو دي جيدو باري بارش نياس نيستو ومن بعد وجوب الحج وقبل أدائه لم يسقط عنه الحج بموته وستق من يحج عنه من أصل تركته ميجي أجار شخص مرد بعد از واجب شدن حج یعنی حج برش واجب شده بود که مرد و قبل از ادا حج برش واجب شده بود مرد هنوز حج و عدا نکرده بود میگه حج از گردنش ساقط نمیشه با مرگش و اجاره گرفته میشه کسی که حج بکنه به جایش از اصل ترکش از اصل مال ترکش بعد امان مالک در پاورقی آورده که گفته شخصی دیگر به جاش حج نمیکنه، مگر این که شخص وصیت کرده باشه زیرا حج عبادتیست که جنبه بدنی درش غالب است و نیابتو نمی پذیره آه؟ چون حج هم جنبه مالی داره هم جنبه بدنی ولی نماز نه نماز همه جنبه بدنیه خب و الحج و حالا با این مقدمه که شرایط حجو گفت شرایط فرضیه تحجو الان میگه که حج بر سنو است، احرامی که شخص میبنده بر سنو هست افراد و قران و تمتع، یک افراد دو قران سه تمتع هر ایک از این رو توضیح میده فالافراد افضل و هو تقدیم الحج على الامره میفرماید افراد ترین هست و افراد مقدم کردن حج بر عمره هست یعنی اول حج انجام میده بعدا عمره این ای نظریه امام است. گروه از فقه ها میگویند قران بهتر است و گروهی دیگر میگویند افضل تر است و القران هو الجمع و بین الحج و العمره قران کدومه؟ قران جم کردن بین حج و عمره هست اونی هست که شما در همون سفر هم حج میکنی و هم عمره چونین تعریفش میکنن حج و عمره رو با هم انجام میدی بدون اینکه در وسط از احرام بیرون بیای. بله، شما احرام بسی برای عمره بعداً هنوز که بیرون نومدی میگه احرام میبندی برای چی؟ برای حج پس جمع بین حج و عمره هست و تمتعو هو تقدیم العمره الى الحج في اشهر الحج تمتعو هم مقدم کردن عمره بر ببین افراد و بر عمره مقدم میکنی در قران هر دوتا با هم جمع میکنی یعنی با یک احرام و البته حالا چی بگیم یک احرام چی بگیم دوتا احرام ولی به این شکل توضیحش بدیم که هنوز اصلا از احرام عمره در نمومده که احرام برای چی میبنده؟ برای حج یعنی قبل از تواف تواف عمره میاد احرام میبنده برای چی؟ برای حج تمت تو هم جدا جدایند یعنی منتها فرقش با افراد افرادی که اینجا آورده در مذهب ما شافی اینه که در تمتو شما اول عمره رو انجام میدی بعدش حج یعنی شما در ماه های حج در همون سفر در همون یک سال عمره رو که انجام میدی در همون سفر میونجا منتظر میمونی تا هشتم زل الحجه دوباره احرام از احرام که دیگه در عمره دیگه حج عمره رو انجام دادی فارغ شدی کامل دوباره احرام میبندی همونجا برای حج اینو میگن تو. پس در تعریف افراد آورده بود مقدم کردن حج بر عمره ولی افراد اصلا جدا هستند. و فرق دیگرش اینه که میگه حج جدا بر چیه؟ بر حج مقدمه بر عمره هست در افراد اینجا عمره مقدمه بر حج در اشهر حج در ماهای حج خب ماهای حج که دیگه خودش الان میگه بله وفيه اذا لم يكن من اهل الحرم ولا من حاضريه دمون میگه حج تمتع زمان که شخص از اهل حرم نبود و از حاضرین حرم نبود باید خونی رو بده چون در قران کریم اومده ها فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهاجیه بعد هادی رو بده یعنی بعد یه خونی رو یه گوسفندی رو بعد چیکار بکنه اینو بهش میگن هدیه نسوک هدیه نسوک إن أحرم بالحج في آمه من مكة دون ميقاته باله. وفيه إذا لم يكن من أهل الحرم ولا من حاضره دمون إن أحرم بالحج في آمه من مكة دون ميقاته ميجد داران زماني كز أهل حرم واز أحاضره هناش نبود برش برشخص خوني هست يعني زبه هست اگر احرام بحج بس در همون صال از مكة دون میکاته فاینترست میقات. و هاکذا في القران دمون همچنین در قران هم شخص باید حدی بکشه ولا دم في الافراد اما در افراد نیست افراد حج خالی رو میگند حج تنها رو میگند بله. در تمتع تو قران همراه با عمر هستن. تمتع و قران همراه با عمر حسن منته در قران جمع میکنه و در تمتع از احرام خارج میشه و ارکان الحج تون ارکان حج هم 4 تا الاحرام و الوقوف بعرفه و الطواف احرام وقوف در عرفه و طواف و سعی و سعی بین صفا و مروه این چارتا ارکان حج هستند در مختصر فقه امام شافی که من خوندم ترجمه خالدی هست آورده بود که تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر و هم جزوه ارکان آورده بود بعدا در واجبات که هم مراجعه کلی آورده بود تراشیدن یا کوتاه کردن که البته گفته بود که شماردنش از واجبات زیفه ولی همین صحیحه آه که احرام وقوف در عرفه تواف و ساید و ما سواه نسکون او جز از اینا یا نسک هستن یا حیات. حیعت ببین اون چیزی رو میگن که بر ترکش نیازه به خون نیازه به کفاری خونی نیست ولی در نسک چرا در واجبات چرا اما در خود ارکان نه ارکان که اصلا انجام نمیگیرن بدون حج انجام نمیگیره بدونش یعنی اگه اونت ترک بشن با چیزی جبران. و العمرت واجبتون که الحجی عمره واجب هست مانند حج و ارکانو ها ثلاثتون ارکان عمره دیگه تا هستن الاحرام و الطواف و سعی احرامو طواف و سعی احرام قصد حجو میگن احرام رو میگن؟ قصد رو میگن وارد شدن نیت کردن در درون اعمال مناسک حجم میگم